آن شب عالمی داشتم بازوغ و شوقی در خانه با پدرم شوخی و بازی کردم که اصلا انتظارش را نداشتند برخلاف همیشه که می و کنار چراغ پایداری در ایوان می نشستم و کتاب می خاندم. آمدم نزدیک پدرم در اتاق نشستم و ته گیلاس ودکا در آب علی ریختم و سر کشیدم کمی الکل مرا در حالتی که دارم امیغ تر می کند بیشتر می بینم بیشتر می چشم درد را شدید تر احساس می کنم و لذت را جان بخشتر در می یابم. دیر وقت به اتاق خوابم رفتم مندتی گرامافون گذاشتم و دور اتاق راه رفتم ساعت یک بعد از نصف شب بود در اتاقم باز شد و پدرم در رب دو شام رو عنابی رنگش پیش من آمد و پرسید چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمی برد. پرسید چرا؟ سرم را روی شانه پدرم گذاشتم حق گریه کردم و گفتم نمیدانم چه پدر مهربان و ای داشتم سوالفهای من را ناز کرد اما فرصتی به او ندادم او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید دیگر حالا میخوابم یک بار دیگر شاید برای آخرین بار حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش می توانستم راحت باشم چند روزی او را ندیدم و همش عقب همش عقب وسیله میگشتم تا به او تلفن کنم از ها هر روز دور مدرسه او تواف میکردم به امید اینکه شاید ببینمش به در خانه میرفتم. به وسیله تلفن از نوکرش آقا رجب سراغ او را میگرفتم موقعی که میدانستم در خانه نیست به وسیله تلفن با آقا رجب صحبت میکردم و احوالش را میپرسیدم حتی ایک بار گفتم بگویید فرنگی سلفون کرده است به امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند بلاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد نامهای از مهربانو برایم رسید به من نوشته بود که خدا داد سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بندند چند از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصی برای جمع کردند و تا به حال مخارج او تعمین بوده است اما دیگر کاری از آنها ساخته نیست و علاوه خود مروانو هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند یقینا مخارج تحصیل او هم قطع خواهد شد خود خداداد هم میل ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببینند مدعی است که کسالتش چند روزی بیشتر طول نخواهد کشید و مرخص خواهد شد پزشکان به این اندازه خوشبین نیستند آقازای مهربانی بود که من فوری به استاد مراجعه کنم از او کمک بگیرم شاید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بتوان باز هم خرج تحصیل او را برایش فرستاد به استاد تلفن زدم و خواهش کردم که برای یک امر فوری با او در سینمای قصر ساعت هفت و نیم ملاقات کنم اشاره کردم که نامه‌ای از خداد خدا آمده است و دیدن او ضروری است برخلاف انتظار فوری قبول کرد و شب او را دم در سینما ملاقات کردم صورتش گرفته بود گویی تصور کرد که تغاضای من بیپایه بوده است وقتی نامه را به او دادم گفت چه نوشته من حالا نمیتوانم بخوانم خلاصه نامه را به او گفتم بعد او گفت به او خرج تحصیل نخواهند داد معلوم است که نامه بدون اطلاع خداداد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست. گفتم: بالاخره باید کاری برای او کرد. گفت: باید بر پولی برایش تهیه کرد و فرستاد. پرسیدم: چقدر می خواهید بفرستید؟ گفت: سعی می کنم تا چند روز دیگر دست بالا تا یک هفته DVCصدمان برایش تهیه کنم و بفرستم. گفتم من فردا سطمان تمان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید پرسید از کجا پول میآورید گفتم از پدرم میگیرم ما هر دو بازوهایمان را روی صندلی تکیه داده بودیم و سرهایمان را نزدیک هم برده بودیم تا احساس صحبت کنیم نگاه شگفتانگیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی دل من از تمجید او شاد شد بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد با هر دو, دستش... با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی خودم را در زد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد های درشت او بزرگ چلب کرد اما ناگهان خودش را کنار کشید فشار دستش سوس شد مثل اینکه انگشتانش سرد شدند این تغییر حالت برای من چندشاور بود من هم خواهی نخواهی دست خود را از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم و شب به تماشای فیلم پرداختیم یک فیلم موزیکال نمایش می‌دادند